بسم الله الرحمن الرحیم خداوند بی اندازه مکربان نهایت باره بگمان خداوند گفته زن را که در مورد شوهر خود با تو بحث می کرد و با خداوند شک و می نمود شنید و خداوند گفته گوی هر دوی شما را می شنید بیگمان خداوند شنوا و بیناست آنان از شما که با زنان خیش ظهار می کنند یعنی زن خود را مادر خیش می خوانند در واقع ایشان مادرانشان نیستند مادران ایشان نیستند مگر زنانی که ایشان را زاییدند و بیگمان ایشان سخن ناشایسته و دروغ می گویند و حقا که خداوند بخشایش گرو و آموزگار است کسانی که زنانشان را ظهار می کنند و سپس از آنچه گفتهاند برمیگردند، بر مکلفند پیش از آن که با هم هم بستر شوند برده را آزاد سازند با این حکم کفاره با شما اندرز داده می شود و خداوند به آن انجام می دهید آگاست پس کسی که برده را نیافت قبل از تماس زن و شوهر با یک دیگر لازم است دو ماه مسلسل روزه بگیرد کسی که روزه مسلسل هم نتواند وی لازم است تا شست مسکین را تعام بدهد این حکم برای آن است تا به خداوند و پیامبر او ایمان آورید و این حدود خداست و برای منکران عذاب دردناک است بگمان آنانی که با خدا و پیانبر او دشمنی می کنند زلیل کردن شوند توری که پیشینیانشان زلیل کرده شده بودند حقا که ما آیات روشن را نازل کردیم برای کافران عذاب زلطبار است روزی که خداوند همه ایشان را برمی پس ایشان را از اعمالی که انجام داده بودند آگاه می سازد. خداوند شمار آن را گرفته است و ایشان آن را فراموش کرده اند و خدا بر همه چیز گواه است آیا ندیدی که خداوند آن چرا در آسمان ها و در زمین است می داند؟ هیچ رازی میان سه نفر نیست مگر اینکه او چارم ایشان است و نه در میان پنج کس مگر اینکه او ششم ایشان است و نه کم تر آن و نه بیشتر مگر اینکه او همراه ایشان است در هر جایی که باشند سپس در روز قیامت ایشان را به آنچه کرده اند آگاه می سازد حقاق خداوند به هر چیز داناست آیا ندیدی کسانی را که از سرگوشی با هم منع شده بودند، سپس به کاری که از آن منع شده بودند باز متواصل میشوند و با یک دیگر به گناه و تعدی و نافرمانی پیامبر سرگوشی می کنند و چون نزد تو می آیند تو را می که خدا تو را با آن تهنیت نگفته است و با خود می چرا خداوند ما را به آن چه می عذاب نمی کند؟ برای ایشان دوزخ بسنده است که با آن داخل می شوند پس چی بد جایگاه است دوزخ؟ ای مؤمنان، چون با هم سرگوشی می کنید به گناه و تعدیل و نافرمانی پیامبر سرگوشی نکنید بلکه به نیکی و پرهیزگاری با هم سرگوشی کنید و از خداوندی که به حضور او حشر می شوید بترسید که سرگوشی از شیطان است تا مسلمانان را اندوه گیم سازن حالان که به ایشان هیچ ضرر عایت کردن نمی تواند مگر به اجازه خدا پس باید مؤمنان تنها بر خداون توکل نماید. ای مسلمانان چون به شما گفته شود که در مجالس جا باز کنید پس جا باز کنید تا خدا برای شما گشایش دهد و چون گفته می شود برخیزید پس برخیزید خداوند درجات کسانی از شما را که ایمان آوردند و آنانی را که علم داده شده اند بالا میبرد و خداوند به آنچه میکنید آگاست ای مؤمنان وقتی که میخواهید با پیامبر و مشوره بپردازید پیش از مشوره خیش خیراتی بدهید این کار با شما بهتر و پاکیزتر است اما اگر توانی خیرات را نداشتید پس خداوند آمر زنده و مهربان است آیا از فقر ترسیدید که پیش از مشوره خیش با پیانبر صدقه بپردازید؟ اما حالا که این کار را نکردید و خداوند از فرو شما درگذشت، پس نماز را با کمال و تمام دارید و زکات بدهید خداوند و پیانبری او را فرمان ببرید و خداوند با آنچه بیکنید با خبر است آیا ندیدی کسانی را که با قومی دوستی کردند که خداوند بر ایشان خشم کرده است؟ ایشان نه از تو و نه از آنهای و با دروغ سوگند می خورند در حالی که خودشان می دانند. خداوند برای ایشان عذاب شدید آماده ساخته است. زیرا آنچه ایشان انجام می دهند واقعا برای بد است. ساگانن را سپری به روی اعمال بدشان قرار دادند و بدین گونا مردم را از راه خدا باز داشتند و بنابراان برای ایشان مجازاتتی است رسوا کننده هرگز مالها و فرزندانشان هیچ عذاب خدا را از ایشان دف نمیکنند. ایشان اهل آتشند در آنجا همیشب اثر میبرند. روزی که خدا همه ایشان را برمی آنگاه با او سوگن می خورند چنان که حالا با شما سوگند میخورند و چنین می پندارند که بر چیزی هستند یعنی کاری خوبی انجام دادهاند ولی بدانید که آنها واکن دروغ گویند شیطان بر ایشان غلبه کرده است و ذکر خداوند را فراموششان گردانیده است ایشان حزب شیطانند بدانید که حزب شیطان و منها انزیانکار واقعا آنانی که با خداوند و پیانبر او ستیزه کنند هم ایشانن در جمله زلیترین آفریده ها خداوند مقرر داشته است که با یقین من و پیانبرانم پیروز میشه حقا که خداوند توانا و صاحب قدرت مونی است چنین مردمی را بی که از یک سو به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشند و از سوی دیگر با کسانی که به خداوند و پیانبرش سر ستیز دارند دوستی کنند اگرچه این ستیزکاران پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خیشاوندانشان باشند این هایند که خداوند در دلهایشان ایمان را جایگزین ساخته و ایشان را با روح از نزد خودش تقویت بخشیده است و آنها را به با های داخل می کند که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد در آن دانه و سر می برند خداوند از ایشان خوشنود شده و آنها نیز از خدا خوشنودند ایشان حزب خدا هستند. بدانید که مسلمان نه حزب خدا هم ایشان راستگار